خشت خیال به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ مثل هفته‌های پیش با شما هستیم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های خشت و خیار با موضوع معماری و اگر پیش از این شنونده این برنامه بوده باشید اطلاع دارید که ما عمدتا در این برنامه سعی میکنیم با دعوت از کارشناسان و معماری شهرسازی و میراث فرهنگی مباحثی در این حوزه رو با شما در میون بگذاریم. برنامه امروز ما در واقع به یک معنا برنامه مناسبتی هست. اخیراً یکی از اشخاصی که در روزه معماری خب خیلی گذار بودن، مرحوم خانم سویلا بسکی فوت کردن. ایشون از بنیانگذاران مجله معمار و در واقع جایزه بزرگ معمار بودن که خب نقش مهمی رو در یک یا بیش از یک دهه اخیر در واقع در فضای حرفه‌ای معماری و فضای رسانه‌ای ایفا کرده و در واقع ما به این مناسبت دعوت کردیم از دو مهمان عزیز تا در واقع یک مروری داشته باشیم بر فعالیت‌های سرکار خانم سُهیلا بسکی و در عین حال یک مقداری با یک نگاه تحلیلی هم بتونیم راجع به فعالیت‌های ایشون صحبت بکنیم. من علی اعطا هستم تا حدود 25 دقیقه دیگر در واقع با شما خواهیم بود با این گفت مهمانان ما در این برنامه سرکار خانم مهندس حبیبه مجد آبادی هستند، مهندس معمار که در دو شماره مجله معمار سردبیر در واقع این مجله بودند و همکاری نزدیک داشتند با خانم بسکی و جناب آقای مهندس علیرضا تقابونی، مهندس معمار و ما دعوت کردیم از این دو بزرگ تا بتونیم در این رابطه با شما گفتگو بکنیم خانم مهندس مجد من خدمت شما سلام عرض میکنم و سپاسگزار استم با ابت حضورتون در این برنامه بندم سلام عرض میکنم خیلی ممنونم از این که من دعوت کردین خیلی متشکرم آیا مهندس درقامونی خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم با ابت حضورتون در این برنامه سلام خیلی متشکرم. خب من فکر میکنم بد نباشه خانم مهندس مجد آبادی شما در ابتدا یک توضیحی بدید برای ما برای شنوندگان در رابطه با فعالیت خانم سوهلا بسکی چه در واقع در زمانی که ایشون در فصلامه آبادی که خانواده بسکی در واقع یکی از افراد گذار در اون مجموعه بودن و بعدن که جدا شدن از درواقع به وزارت مسکن و مجله معمار و مؤسسه معمار و در واقع جایزه معمار رو راه اندازی کردن و خب گذار بودن در این فضا من خواهش میکنم یک مقداری در این رابطه توضیح بدید برگردیم بیشتر اگر که بخوایم راجع به شخصیت خود خانم بسکی صحبت بکنیم که به نظر من شخصیت ایشون تبلورش رو میشه در مجله معمار و جایزه معمار دید. اول از همه که ایشون خب خیلی شخصیت کاریسماتیکی داشتن و کسی که حتی یک برخورد با ایشون داشت میتونست روی زندگیش تاثیر بذاره. و اتفاق خیلی جالب و عجیبی که افتاد بعد از فوت ایشون صدها نفر شروع کردن خاطره نویسی کردن و از تاثیراتی که ایشون در زندگیشون داشته صحبت کردن. یکی از ویژگی های خانو بسکی که خیلی روی مجله تاثیر گذاشت این که از نظر شخصیتی کاملا مستقل بودند. همیشه مشورت میگرفتن, حتی از افرادی بیرون از مجله مشورت نیجرفتند جلساتی برگزار میشد نظرها رو میگرفتند ولی از نظر شخصیتی کاملا مستقل بودند هیچ وقت تمول یا قدرت یا موقعیت اجتماعی کسی توجهشون رو جلب نمیکرد و همیشه روی عملکرد افراد بود که در واقع سهم میذاشتند. این ویژگی کمک کرد به استقلال مجله. مجله همیشه اسپانسرها رو کسایی رو که تبلیغ می‌دادن خیلی حضورشون رو محدود می‌کرد. اجازه نمی‌داد که روی اون ختمش اصلی بتونه کسی از بیرون تأثیر گذار باشه. یکی از ویژگی‌های دیگه‌شون این بود که از نظر ایشون وقتی که نویسنده‌ها رو چک می‌کردن، افراد داخل مجله هیئت تحریریه نویسنده‌های بنام با نویسنده های گمنام و حتی دانشجوها همه از چشمشون یکی بودن یعنی من فکر میکنم حتی وقتی نوشته ها رو می خوندن به اسم نویسنده اصلا توجری نمیکردن و خیلی پیش می اومد که نوشتههایی از اعضای تحریریه اصلا رد می و حتی می گفتفتن که خوبی نوشته بی ربطه یا ارتباطی نداره و از دانشجوها و نویسنده های گنا بود که چاپ می شود. خانبسکی البته ما معمارها به عنوان مؤسس مجله معمار و جایزه معمار می‌شناسین و ادبیاتی‌ها ها ایشون رو به عنوان یه نویسنده می‌شناسن من راجب خانبسکی به عنوان یکی از مؤسسین مجله معمار میتونم صحبت بکنم خب شما همطور که میدونین مجله آبادی رو کار میکردن در وزارت مسکن شهرسازی خب یک مجله دولتی بود ولی در همون زمان کیفیتی داشت که اونو برجسته کرده بود خیلی علاقه من بودم به این مجله ولی خانم ویسکی به نظر من انتظارش خیلی فراتر بود از مجله آبادی به خاطر محدودیت هایی که وجود داشت و بالاخره یک مجله دولتی مسائل و محدودیت های خاص خودش رو داره. این بود که ایشون از اون مجله بیرون اومدن و تصمیم گرفتن که این خصوصی رو تحسیس بکنن. و فکر میکنم که تحسیس مجله معمار در اثر یک همزمانی خوب بود که اتفاق افتاد. چه نفر... سالی تأسیس شد اه... اگه اشتباه نکنم سال 74 بعد باشه. بله و جایزه معمار هم در همون زمان یا جایزه معمار بعد از اون اتفاق افتاد. بله. خان بسکی با مدرس هاشمی تو مجله آبادی همکاری داشتن و بعد با هم تصیمی گرفتن و یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد آشنایی این دو نفر بود با دکتر کامران افشانادری این که من فکر می‌کنم که آقای کامران افشانادری یک مقاله در مجله معماری شهرسازی چاپ کرده بودند که خیلی مورد توجه خانبسکی قرار گرفت داری. نقدی بود بر مسابقه فرهنگستان‌های ایران که اولین نقدی بود که در ایران نوشته شد و بعد خانبسکی تماس گرفتن با ایشون که ابراز علاقه کردن گفتن که من دوست داشتم با یه تمچین نویسندهی برخورد بکنم که نقدی به نویسه که نه خیلی تعریف و تمجید باشه و نه در واقع انتقاد صرف باشه و این شد که فکرها به هم نزدیک شد گرچه این سه نفر به نظر من از شخصیتی خیلی با هم متفاوت بود خانم بسکی به عنوان کسی که اقتصاد و مدیریت خونده و نویسنده است و شمه روزنامه نگاری خیلی قوی داشتن که می متون رو واقعا با تیزبینی بررسی بکنن و تشخیص بدن متن خوبه از متن بعد خیلی خوب تشخیص میدادن. آقای هاشمی خب به عنوان یه مدیر دولتی و کسی که سابقه کارهای اداری داشته، سالها مدیر دولتی بوده. در این مقطع معاون وزیر مسکن و شهرسازی بودن. به عنوان مدیر مسئول آوادی اگر اشتباه نکنم. و خب آقای اشرف نداری هم از اون طرف کسی بودن که مهندسی بودن که تحصیل کرده خارج بودن. با نشریات بیرون از ایران آشنایی داشتن کار کرده بودند بله. و میتونستن با معماری معاصر دنیا آشنا باشن با معماری معاصر ایران آشنا باشن و ایشون هم خب نویسنده خیلی قوی بودن من فکر می که ترکیب این درست. سه نفر اون ابتدا هسته اصلی مجله رو شکل داد خیلی معاصره بله خیلی متشکرم اگر اجازه بدید فرصتی بگیریم و مجددا برگردیم با ادامه این گفتگو رو با آقای دکتر داشته باشیم با شما شنوندگان عزیز هستیم با یکی دیگه است. سلسل برنامه های خشت و خیال و در این برنامه با حضور سرکار خانم مهندس حبیبه مجد آبادی و جناب آقای دکتر علیرضا رزا با شما گفتوگو میکنیم و در واقع موضوع برنامه ما در رابطه با مرحوم خانم سوهیلا بسکی هست که در واقع به عنوان یکی از بنیانگذاران مجله معمار اخیرا از میان ما رفتن و در واقع این برنامه به نوعی مروری بر هایی که داشتن آقای دکتر تقابونی اخیراً در واقع در یک جمعی از معماران من صحبتی از شما شنیدم که فکر می‌کنم شروع خوبی باشه برای این گفتگو شما اشاره کردیم در زمان دانشجویی در زمانی که در واقع خیلی تولید فکری در ایران در حوزه معماری وجود نداشت مجله معماری خلایی رو برای شما پر می‌کرد فکر می‌کنم بعد نیست این رابطه توضیح بدید تا ما بتونیم یک تصویر داشته باشیم از اینکه مجله معمار اساساً از کجا شروع کرد خب من یک از شهرستان ها بودم توی زمانی بود که توسعه کمی دانشگاه ها خیلی زیاد شده بود. بنابراین ما دانشگاه های زیادی رو داشتیم در جای مختلف کشور که نمیتونستن اون نقش تاثیر گذاری که حالا دانشگاه های تهران دارن رو داشته باشن بله. و ما تو دانشگاه عموماً با یه سری تکنیک مواجه میشدیم موقع یاد گرفتن درسته یعنی به جای اینکه مفاهیم پایه خیلی عمیق به ما گفته بشه و اونها رو تمرین کنیم بیشتر درگیر هایی بودیم مثل خط کشیدن مثل نقشه کشیدن توی اون فضا خب مجلات معماری بود مثلا مجله آبادی درست مجله ارزشمندی بود ولی یک باره وقتی مجله معمار به دنیا اومد ما با یه فضای جدیدی تو مجله مواجه شدیم مجله‌ای که به روز برخلاف مثلا حالا آبادی که حالا نه. یه حالت دولتی داشت یه ذره محافظه کار پژوهشی داشت اساسا پژوهشی داشت داشت خب با. تصور کنید برای دانشجوایی مثل ما که در سنین کمی بودیم و به قول معروف مسئله معماری خب خیلی جذابتر از شهر بود. مجله معمار اومد با معرفی پروژه های مهم دنیا که قبلا ما فقط در ژورناال ها میدیدیم و عکسشو رو تماشا میکردیم ولی با یه سری متن که اونو داره توصیف میکنه و تحلیل میکنه. و یه سری مقالاتی که این مقالات بسیار بسیار به زبان ساده، شروع میکرد پایه ای که گفته نشده رو روشن کنه درست و خب این رهایی بخش بود دیگه دریچه بله. بود برای ماهایی که علاقمند بودیم و تأثیر گذاشت این تأثیر بعدا با مسابقه معمار شکل دیگهی به خودش گرفت بله. یعنی من یادمه که خب من بعد از شهرستان برگشتم چند مسابقه شرکت کردم مسابقه کشیدنی رتبم رو آوردم بردم اینو گفتن که میشه اینو چاپ کنید خانواده بسکی گفتن نه هر وقت کارت اجرا شد بعد بیار من چاپ می کنم و کنید. این نگاه واقع گرایانه و عملگرایانه ای که داشتن که یک عده ای که علاقمند هستن ولی در حйте کتاب ها موندن بتونن وارد بطن اجرایی جامعه بشن و خب این ایده ها در ذهن ما شکل گرفت که پس بعد ساخت باید وارد این بازار شد که حالا ما اون موقع فکر میکردیم کاری نمیشه کرد و مسابقه معمار سالهای اولش برای ما باز یک جنبه امیدبخش داشت که ای بابا پس این آدم ها تو این کشور با همین امکانات همین پروژه های خوب میشه کشید درست. میشه ساخت این نیست که نشه و شدنیه و این شدنی بودن سرنوشت خیلی رو عوض کرد که بمونن و کاری انجام بدن درسته بسیار خب خیلی متکررم از توضیحی که دادید خانم مهندس مجتبی وازی شما در تیم تحریریه مجله معمار حضور داشتید در دو شماره سردبیر بودید یک تحلیلی رو الان آقای دکتر تقاوونی ارائه دادن مشخصا خط مشی که در مجله معمار دنبال شد چی بود که حالا به یک جنبش آقای دکتر تقاوونی اشاره کردن در واقع سیاست‌گذاری به چه ترتیبی بود این چیزی که آقای دفتر تقابلی هم بهش اشاره کردن تو شخصیت خانبسکی بسکی اینه که خیلی واقعی گراه بود و بنابراین این ویژگی واقعی گراه بودن روی مجله هم تاثیر میذاره ببینید مجله معمار چیزی جز واقعیت معماری محاصر ایران نیست و هایی که توش نوشته میشه بزاعت نویسندگان ایرانیه پروژه هم که چاپ میشه بزاعت معماری معاصر ماست. مجله کاری که میکنه انتخاب درست رو داره که میتونه بهترین ها رو انتخاب بکنه و ارائه بده. مجله معماری هیچ وقت نمیتونه جلوتر از معماری کشورش علاقه داره. بله. همیشه فقط میتونه یک آینه باشه برای بازتاب به اون چیزی که واقعیت و این ویژگی خیلی خوبه خانم بسکی بود که واقعی را بودن و هیچ وقت آرمانگران نبودند و هیچ وقت در تصورات ایدئالیستی سیر نمی‌کردند در واقع بیشتر شد بشه گفت عملگرا چون خب خود نشریه هم کمتر میشه گفت مباحث تئوریک رو بعدها دنبال کرد این در واقع یک عنصر بوده البته اگر قبول داریم تحلیل رو که مباحث تئوریک دنبال کمتر... نشه بله به نظر میاسید که در واقع بیشتر در واقع به سمت پروژه‌ای که ساخته میشه و با, با کیفیت بالا ساخته میشه و خوب که این به شکله یک تسمی ببینین من شماره اول مجله معمار دکتر افشارداری سری مقایث تئوریی که مطرح کردند که فکر میکنم برای اولین بار قطعا میتونم بگم برای اولین بار کسی راجب به متدووژی طرایی در ایران صحبت کرد دلست. باید ادی می اومدن ما باید نویسنده میداشتیم تئوریی هم می داشتیم که این رو پشت سرش بگیرم و ادامه بدن برای همین ارز میکنم که مجله باستتاب واقعیته یعنی بله. همیشه بذاعت رو در واقع باستتاب کرده من خودم گاهن که سردبیر هستم در پیدا کردن نویسنده ها مشکل دارم بله. همیشه هم عمومی هست درخواست میکنم از افراد مختلفی ولی اونهایی که بگو شما عمل را باشن و بیان و بنویستن واقعا تعدادشون انگاش شما رو متصف. حالا با تحجیب بیماری که داشتن تو این ساله اخیر نقششون چطور بود توی و بقیره حالا از این به بعد که حضور ندارن به چه ترتیبی باشه؟ خانبسکی با وجود اینکه بیمار بودند، ولی تا روزهای آخر همیشه حضور داشتند. حتی شده مثلا روزی دو ساعت و نوشته ها رو واقعا چک می ولی خوشبختانه خانبسکی یک تیزبینی و آینده نگری داشتن که از چند سال اخیر که درگیر این بیماری بودن یک سیستمی رو در مجله پیاده کردند که متکیب شخصیشون نباشه این تمام کار تقسیم بندی شده و این واگذار کردن هر شماره به یک سردبیر مهمان جزی از این برنامه بود. چون خودشون این پیش بینی رو کرده بودن. الان هم فکر میکنن مجله لاقل تا چهار شماره آینده. مطالبش سردبیرش مشخصه بله محتوا مشخصه و از این به بعد هم هیات تحریریه و دکتر افشانادری محتوا رو کنترل میکنه بله خیلی متشکرم فرصتی بگیریم و مجددا برگردیم به این بود. خب با شما شهرندگان عزیز هستیم با یکی دیگر از سلسله برنامه های خشت و خیال در این برنامه جناب آقای دکتر علی رزا و سرکار خانم مهندس حبیب مجدابادی حضور دارند و در رابطه با مرحوم خانم بسکی خانم سهلا بسکی صحبت میکنیم آقای دکتر تقاوونی شما چند دوره جایزه معمار هم گرفتین و به نحوی یک ای داشتید هرچند خب از همکاران این مجموعه نبودید ولی به عنوان یک معمار حرفه‌ای جایزه معمار گرفتین چه نخشی قائل هستید در واقع برای این جایزه‌ای که مرحوم خانم بسکی یکی از بنیانگذارانش بودند همون جور که عرض کردم خدمتتون اتفاقی که با به وجود آمدن مسابقه معمار افتاد مثلا در مورد خود من خیلی احتمال داشت از رشته معماری برم یک رشته دیگه چون وقتی از دانشگاه داشتم میمودم بیرون خیلی به نقاشی هم علاقه داشتم درست. و این اعتقاد داشتم که معماری تو ایران خیلی کار خاصی نمیشه کرد با این شرایط اقتصادی و اوضع احوال که وجود داره و خیلی جایگاهی برای تخیل و خلاقیت وجود نداره دو به شک بودم برای اینکه من برای ادامه زندگی حرفه معماری رو انتخاب کنم و ادامه بدم یا اینکه به گرافیک و نقاشی رو بیارم چون اون کارام میکردم اون موقع تا انطور هنوز انجام میدیدم این رو خیلی کم به صورت سرگرمی خب مسابقه معمار و نتایجش این بود که پروژه های بسیار کوچک و بسیار بزرگ هستند که ارزشمندانند و قدردانی میشن و ارزشاشون درک میشه و فضایی برای رقابت و دیده شدن و تولید اینها وجود داره خب این امید بخش بود تصویری از آینده رو که شاید دانشگاه نتونست برای ما ایجاد کنه تو ذهن برامون ایجاد کرد که نه پس شدنیه و میشه که کار کرد و همون روند ادامه داشت تا هر کدوم فکر میکنم از این نسل جوونی که توسط جایزه میمار نشون داده شد ارزش کارشون و کارهایی که انجام دادن هرچند با خطا قسمت های خوبش توسط داوران دیده شد و بحث که داوران میکردند بعدا چاپ شد. اینها همه باعث شد که یه عد از جوون ها بخوان که کار معماری رو جدی بگیرند. معماری رو به عنوان یک مسئله کیفی و یک مسئله فرهنگی جدی بگیرند. و در موردش فکر کنند و تولید کنند و براش بجنگند و پروژه های کوچک و بزرگی رو شروع کنن به بوجود آوردن پروژه هایی که ممکنه خیلی از دوستان من در پروژه های اولیه ضررهای زیادی کردن بلاخره همه میدونیم که کار خوب رو به سرانجام رسوندن توی این کشور کار آسونی نیست بالاخره یک سری دفاتر کوچک تونستن به مخاطبین غیر معمار و خود معماران معرفی بشن. شاید بشه گفت کار کردی بود که صرفاً این نشریه داشت. این نشریات دیگه بالاخره پوزور داشتن. به تردیش تعدادشون هم زیادتر شد. هر با بایی خطه نشی. ولی در واقع این کار کرد مشخصاً به نظرم مربوط به این مجله. بله و شما هم در نظر بگیرید وقتی که همچین کاری انجام میدید. همچین رقابتی رو ایجاد میکنید. خب تو هر رشته یه سری گروه هایی هستن که تسبیت شدن در گذشته کسی که میاد همچین جایزه ای رو ایجاد میکنه برای این که بتونه یک قشر جدیدی رو معرفی کنه یا حمایت کنه یا عرضش های جدیدی رو کشف کنه تو کارهای اونها خودش رو در معرض قضاوت بی رحمانه قرار میده و این خطر کردن و خود رو در معرض قضاوت و نقد قرار دادن از یه شخصیتی میاد که در این حال که آرمانگراست بله. یه پاشم در عملگراییه و میدونه که چجوری این دوتا رو بتونه با هم آشتی بده چجوری بتونه یه دیدگاه خیلی مثبتی به آینده و امید داشته باشه و در این حال اونو عملی کنه خانم مهندس مجدوهادی آقای دکتر تقوبونی به نکته اشاره کردن که در واقع از این جنبه جذابیت داره که یک نقش و جایگاه خاصی که داشته بهش اشاره شده یک سوالی که الان در جامعه حرفه کم و بیش وجود داره البته من جنبهش رو از شما پرسیدم این هست که آیا در واقع یک نهادی شکل گرفت در این مجموعه که بشه به ادامه این مسیر هم امیدوار بود ببینید مجله مهمار در یک مقطای شکل گرفت بعدن جایزه معمار اضافه شد به این مجموعه به نظر میرسید که در واقع اینها نطفه شکلی یک نهاد مستقله در این حوزه به نظر میاد در اینکه بخواد ادامه داشته باشه خب باز هم باید زایندهگی داشته باشه برای اینکه در واقع بیشتر تصفیت بشه استمرار داشته باشه و جلوه شما به عنوان یکی از اعضای این مجموعه ارزیابیتون چیه چی فکر می‌کنید البته خیلی هم فکر وقت زیادی نذریم در اون زمانی که مجله معمار و جایزه معمار تأسیس شد بله. یه تعداد انگوش شماری مهندسین مشاور بودن و واقعاً خیلی جوونا شده اصلا اعتماد به نفس رو پیدا نمی‌کردن که بخوان در یک همچین مسابقه شرکت بکنن و نقشی که جایزه میمارداش به نظر من خیلی مهم بود به لحاظ استعدادیابی خیلی از استعدادهایی که شما الان می‌بینید که شناخته شده هستن اون زمان واقعا کسی اسمی از اینها نشده بود درست. و الانم باز این اتفاق میفته شاید همون استعدادهایی که الان خودشون جا افتادن و دفاتر بزرگ دارن شرکت میکنم و احیانا برنده نمیشن. و پروژههایی از دفاتر کوچیک از شهرستانها و افراد شناخته نشده باز میان و این روان همینطور ادامه, ادامه داره. داره به نظر من هیچیزی مانه این ادامه پیدا کردن این روان نمیشه. می دلیلی نمی بینم اولین بار بود که جایزه ممار روش داوری رو تدوین کرد فکر میکنم که قبلا اصلا روش داوری تدویل نشده بود در دوره اول بر اساس همین روش داوری که ری ها پنهان باشه و پروژه ها مشخص نباشن و معمار های شرکت کننده مشخص نباشن یادم میاد که سال اول پروژه مرحوم میرمیران نفر اول نشد. خیلی خوب شک بزرگی بود برای نه. جامعه معماری که یک فردی که اسمشو قبلا نشیدن پروژه اول شده و فکر میکنم پروژه مرحوم میرمیران سوم یا چهارم شد. خب این خیلی امیدبخش بود برای قشر جوان معمار که شرکت میکردن. خب خیلی متشکرم از شما سرکار خانم ماجد آبادی و شما آقای دکتر تقاوونی بابت حضورتون در این برنامه. به امید حال امیدوار هستیم که این مجموعه‌ای که یکی از بنیانگذارانش یا در واقع بنیانگذار اصلیش مرحوم بسکی بودن سرکار خانم بسکی پا برجا بمونه و بتونه در واقع آینده درخشانی رو داشته باشه در ادامه فعالیت خودش. ممنونم من علیه تاب به اتفاق مهمانان عرجمند این برنامه و همچنین جناب آقای فرامرز علی خانی کننده و, و سردویر این برنامه با همه شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم خدا نگهدار